بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن ما بعد باتواجب درخاص بازي از دوستان بران شدیم خیل مختصر عبيات الرحبية ميراس الرحبية رو حل کنیم این کتاب در واقع یکی از بهترین متون در بحث میراس هست و بهترین نظم رو داره واقعا یک شاهکار هست در این زمینه خیلی روان، ساده و تقریبا تمام مسائل میراس رو اکثرشون رو در خودش با این بودنش جای داده این نظر مال نویسنده موفق الدین ابو عبدالله محمد ابن علی ابن محمد ابن حسن رحبی شافعی هست رحبه روسایست در دمشق که این فقیه شافعی اینو سروده هست متوفای سال پانسد و هفتاد و هفته هجری هست رحمت الله علیه پس این متن کوچک و مفید که توصیه می شود برای طلابی که میخوان این علم مهم و سودمند و یاد بگیرند حفظ بشه بر اساس مذهب امام شافعی رحمه الله تعالیٰ علیه رحمت الله علیه نگاشته شده است و بنده هم طبقه مذهب امام شافعی رحمت الله علیه هر چیزی آورده توضیح دادن یعنی طبقه مذهب امام بزرگوار امام شافعی رحمت الله علیه این اه, کتاب که در علم فرائز یا علم میراث هست تقریبا دارای سدو هفتاد و پنج بیت هست سدو هفتاد و پنج بیت هست البته بزرگواری دیگر اومده مثلا در خود متن مسئله رد و توضیح نداده یکی دو مسئله رو توضیح نداده بزرگواری دیگر اومده از صبح اونجا عبیاتی رو تقریباً چند بیت انگوش شما رو اضافه کرده است و اونه هم خیلی روان و ساده هستند ولی متنی که در دست ما هست مال خود رحبیه هست امام رحبیه هست شافعی این مختصر مقدمه بود که بند ذکرش کردم. خب شاید پیش بیاد که چرا من طبق مذهب امام شافعی توضیح دادم؟ این اصلا روش من است اگر کتابی در مذهب ابو حنیفه رو بخوام عباراتش رو حل کنم برای طلبه ها طبقه همون حلش میکنه حالا اگر جایی نظریه ای داشته باشم و ذکر شود که میشود وگر نه طبقه همون مذهب توضیح داده میشه و اینجا هم از اون جایی که این متن امام شافعی اینو رو نگاشته و در مدارس معمولا شافعیه تدریس میشه البته امروزه خدا را شکر جهان اسلام اون تعصب خشک مذهبی رو نداره میبینی مثلا در مناطق غیر شافعیه هم تدریس میشه و این یه بشارته در هر صورت این نقطه رو ذکر کردم که طبقه مذهب توضیح داده شده تقریبا حالا <سؤال> شروع میکنیم مقدمه شروع و سی بیت اول رو که در مورد هم و خدا حسود مقدمه هست در واقع بسم الله الرحمن الرحیم نظم شروع متن شروع با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنه تا الگو فذیری بشه از قرآن کریم و سنت عملی رسول الله صلی الله علیه وسلم بسم الله الرحمن الرحیم اول ما نستفتح المقاله ذکر حمد ربنا تعالى می فرماد اولین چیزی که شروع میکنیم ما قول رو با ذکر حمد پروردگارمان تعالی است ذکر پروردگار متعال هست بله الحمد لله رب العالمين فالحمد لله على ما أنعم حمدا به یجلو عن القلب العمى پس موقع میگه ما سخن با حمد پروردگار شروع میکنیم در نتیجه میگه پس ستایش حمد از آن الله هست به خاطر نعمتی که داده است حمد و ستایشی که برطرف میکند از قلب کوری ها را نابي ناهارا كرهاء قمرهرو جهل نادنيرو ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام سبب بعد الصحبة الله تعالى تروض سلام برنبيك دینش اسلام هست على نبی دینه الاسلام بر پیامبری که دینش اسلام هست محمد اون که هست محمد بدله خاتم رسل ربه و من بعده و صحبه اون پیامبر محمد است. خاتم رسولان پروردگار. خاتم النبیین. خاتم رسول سفز و همچنين درود درود و سلام بر آلش و بر أصحابش باله اين عقيدة يكبر چه تمام أهل سنة است آل و أصحابش رو بني كيان بيكنا و نسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة و سوال میکنیم الله را برای خودمان کمک درخواست میکنیم از الله برای خودمان کمک برای چه چی چیزی فی ما توخینا من العبانه در تصمیمی که گرفته از آشکار کردن از توضیح دادن از ظاهر کردن و نسأل الله لنالععانه میتلبیم از الله برای خودمان یاری کردن در تصمیمی که گرفتیم بر آشکار کردن و بر اظهار کردن و کشف کردن در چه چی چیزی اظهار کردن مذهب الامام زید الفرازی اذ کان ذلك من اهم غرضی تصمیمی که گرفتیم آشکار و کشف کنیم مذهب امام زید فرازی رو زید صحابی جلیل القدر زید ابن ثابت رضی الله عنه. بس در این تصمیق ما گرفتیم مذهب امام زید میراسی رو فرزی رو آشکار بکنیم از الله طلب کمک بکنیم زیرا اذکان ذاکه من اهم الغرزی زیرا این کشف کردن ابانه کردن مذهب امام زید فرزی از اهمترین اهداف و اغراض هست علما به العلم علم خیر ما صعی فیه و ما له العبد دعی با تو علم که ك... علم آگاهی بهترین چیزی است که ك... سعی شده است درش و اولاترین ترین چیزی است که ك... بنده به آن دعوت داده شده است با تو این که علم بهترین چیزی است ك... برایش تلاش شده است و اولا چیزی است که بنده به آن دعوت داده شده است. وان هذا العلم مخصوص بمعقد شعفی عند كل العلماء به اوول علم يفقده في الأرضی حتى لا قادو يوجدو. وبا توجب این که این علم خاص هست که در مورد شاعع هست در نزد كل علماء که همانا اولین علم است که مفقود می شود. میراس اولین است که مفقود می شود در زمین تا جایی که نزیک است که یافت نشود اشاره دارد به یک حدیثه به حدیثی که می میگویند ضعیف هست اون حدیث میگه که شما میراس رو حدیثی از رسول الله صلی الله علیه روایت شده است ابن مادر روایتش کرده است و میگویند ضعیف هست که در این حدیث اومده است میراث رو یاد بگیرید و اونو به دیگران یاد بدهید زیرا نصف علم هست و فراموش می شود و اولین علمی است که از امت من گرفته می شود این دو تابعت به این چیز اشاره می کنند پس وانه هذا علم مخصوص بی ما کت شاه فیه کل العلماء و این علم و زیرا که این حمانت این علم خاص هست شایع هست در موردش در نزد تمام علما منتشر هست در نزد تمام علما که همان اولین علمی است که مفقود می شود در زمین تا جایی که نسیکست یافت نشود از بین برود و آن زیاد خصص لا محاله بما حباه خات و همان زیادی من صابت رضی اللهم خاص شده است به سبب وصفی که خاتم الرساله اون رو کرده است یعنی فرموده است که زید فرزی ترین, ترین شماست میراسی ترین شماست در میراس وارد ترین هست من قوله فی فضله منبهن از قول رسول الله صلی اللہ علیہ در فضیلت زید خبر داده است افرازو کم زیدون و ناهی که بها فرزی ترین شما میراسی ترین شما زید هست و ناحی که و در فضیلت زید همین تو را بس هست در فضل و در وصف زید همین تو را بس هست ناحی که به یعنی کافی هست تو همین. فکان اولا با تاببع ای پس اولاتر هست به پیروی کردن پیرووی کننده پس اواتترین کسی که؟ شخص پیروی کننده از اون پیروی کند زید حس فکان اولا بالتباع التابع پس اولاتر هست به تبعیت کردن تبعیت کننده لا سیما وقد نحاه الشافعی مخصوصا که امام شافعی نحوه او حرکت کرده است مائل به او شده است در مسائل میراسی آرای او را ترجیح داده است و به سمت او ميل دارد بله امام امام بزرگوار محمد ابن ادریس شافعی رحمه الله است مجتهدین امته اسلام هست بی نیاز از واسطه پس خب فهاك فيه القول ان ايجاز مبرئا ان وصمه الالغاز پس بگی فهاك فخذ پس بگیر قول رو باره در مذهب امام فحاکا یعنی بگیر حاکم معنی خود پس بگیر فیهی یعنی در مذهب زید القول سخن را ان ایجاز به شکل ایجاز مختصر مبرعاً عن وسمت الالغازی که پاک هست و منزه هست از الغاز از پیچیدگی از مخفی بودن منظورین هست که این متن واضح و آسان هست بگیر قول رو در علم میراث طبق مذهب زید ابن ثابت رضی الله عنه که خیلی مختصر و واضح هست و از ایب پوشیدگی و پیچیدگی مبره است این مختصر مقدمه بود, بود تقریبا در این سیزه بیت این امام بزرگوار امام رحبی رحمت الله علیه آورده بود موفق پیروز باشید.